اطمه عوازارری اولین نیروی خاوم مجموعه نوین ماست به صورت رسمی و نفر دوم استخدامی تو شرکت نوین ماست بسیار زحمتکش، فعال و خیلی میتونم بگم که با حوصله و پراعصاب قطعا کاری که تو انجام میدی خیلی از آدما نمیتونن انجام بدن. سر و کرل زدن براننده ها کمک به بارگیری ها و چینش این ماشین ها بسیار کار سختیه که فقط و فقط تو مجموعه از تو برمیاد توی این چند سایی که در خدمت بودیم همیشه با صبر و بسله و از خودگذشتگی سعی کردی کار تو درست انجام بدی و این واسه من خیلی ارزشمنده. امیدوارم که سالهای بعد خیلی قویتر و جایگاه های بهتری رو به دست بیاری و مطمئنم که اینجایی که واسطادی حق تو نیست و قطعاً با تمام جان و دل میگم که تو میتونی یکی از بهترین مدیر فروش هایت حالا یا شرکت نوین الماس یا هر شرکتی که توش کار کنی باشی تو نهومین سالگرد نوین الماس ازت تشکر میکنم و میخوام بدونی که همه زحماتت دیده میشه و برای من ارزشمندم موفق و پیروز باش